غلام نرگس مست تو تاج دارانن. خراب باده لعلت تو حوشیارانن تو را سباب و مرا آب دیده شد قماز وگر نه آشق و معشوق رازدارانن ز زیب زلف دوتا چون گذرکنی بنگرد که از یمین و یسارت چه سوک وارانن گدار کن چو صبا بر بنفش زار و ببین که از تتاول زلفت چه بی قرارانند نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو که مستحق کرامت گناکارانند نه من بر گل آرز غزل سرایم و بس که اندلی به تو از هر طرف قزارانند تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من پیاده میره با من همرهان سوارانم بیا به میکده و چهره ارقبانی کن من به سومه کنجا یا کارانم خلاص حافظ از آن ظلف تابدار مباب که بستگان کمند تو رستگاران